به نام خدای هستی بخش و رزق دهنده بیکران. نوید حسنموی داريان، متخصص و مشاور در امور مالی و آی‌تی. امروز با بخش دومی که آیا سرنوشتمان در دست خودمان هست یا در دست کسی دیگه‌ای یا ما خود ارباب زندگی هستیم یا کسی دیگری ارباب زندگی ما هست، در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم حتما لطفا از وبسایت من دیدن بفرمایید با آدرسی www.winwinwin به معنی برنده خب آیا سرنویشت ما در... به دست خودمان هست یا به دست فرد دیگه یا کسی دیگه قطعا چنانچه در بحث در بخش اول بحث رو ادامه دادیم که ان زندگی ما در دست خود ماست. چون ما در هر لحظه انتخابگر هستیم. چنانچه که ما انتخاب میکنیم. هر انتخاب ما در سرنوشت ما تاثیر دارد. چه تحصیل منفی و چه تاثیر مثبت اگر ما انتخاب هایی درست و سالیم داشته باشیم. قدعاً ان این انتخاب های درست و سالیم در حقیقت نتایج مثبت را در پی خواهد داشت ولی اگر برعکس این مسئله باشه که ما های نادرست و ناسالم و ناسحه‌ای را در زندگی ما داشته باشیم قطعاً نتایج منفی و نتایجی که خوشمان نخواهد آمد نصیب ما خواهد شد در نتیجه ما خالق زندگی خودمان هستیم نه درصدی از زندگی ما بلکه صد درصد از زندگی ما در دست ما هست ما خالقان هستیم یعنی خدای متعال انسان رو تو آفریده که بعد از خدا که خالق هستی هست ما نیز خالق باشیم ما خلق میکنیم مثلا در امور اقتصادی شما مد نظر داشته باشید اقتصاد زمانی که یک انسان به دنیا پا در حقیقت هیچ چیزی در دست نداره و لخت هست به مزه که ما به دنیا میاییم پوشیده میشیم توسط افرادی توسط کسانی که خدای متعال به شکل ازشکال در سر راه ما در زندگی قرار داده است پدر مادر یا هر کسی دیگه شبه به اینها و ما بعد از اون که پا به عرصه واقعی زندگی میگذاریم جوان تر میشیم و بزرگتر میشیم میبینیم که ما خالق اقتصاد هستیم ما خالق علم هستیم ما خالق خانه‌های زیبایی که در حد نمیسازیم هستیم ما خالق خیلی چیزایی که در دنیا میبینید هستیم به همین خاطر خدای متعال در قران کریم بارها تاکید کرده که ما انسان را فریدی آفریدیم تا او انسان خلیفه ما در روی زمین باشه و ای خلیفه بودن قطعا خلقت با خودش به همراه داره شما ببینید شهرهایی هایی که در عقد درود شده که میشه گفت خلق شد توسط اینسان ها وسایل و امکاناتی که توسط انسانها ها اختراع شد و به وجود آمد و اقتصادی که امروز در دنیا هست و... ست ها و هزاران مسائل دیگر دیگری که واقعا نمیشه شمردش توسط اینسان ها خلق شد اگر ما اینسان ها اینقدر قدرت داریم که توان خلقی آنچه که فکرش رو بکنیم مثلا خالقش هستیم میشه اونها رو خلق بکنیم میشه اونها رو به وجود بیاریم پس چطور نمیشه که ما در عقد نتونیم؟ زندگی خودمان را خلق بکنیم ارباب زندگی خودمان باشیم خودمان زندگیمان را رو, رو در دست بگیریم و مطابق در حقیقت انتخاب‌های خودمان از نتایج زندگیمان برخوردار باشیم بسیار بسیار ساده است که ما بپذیریم ما خالق زندگی زندگیمان هستیم و هیچ کسی خالق زندگیمان نیست بحث رو گستریش میریم در بحث اقتصاد شما دو تا فرد رو مد نظر داشته باشید فردی که نشستن در گوشه ای از خلوت خودش در گوشه ای از خانه و هیچ, و هیچ کاری مفید انجام نمیده و فرد رو مد نظر بر برخلاف این فرد اول که در مثلا یا در ساخت ساز یا در کشاورزی فعالیت داره و بعد از مدتی سمره فوقلاده از آنچه که انتخاب کرده و آنچه که روی آن تمرکز کرده برداشت میکنه کنه خانه رو مد نظر بگیرید بعد از مدت سه تا نهایت شش ماه به یک ثروت هنگفتی از در اقت کار کشاورزی خودش میرسه چرا از کاری کشاورزی خودش این سود میبره ولی اون فرد که ما پیشتر مثالش رو زدیم در بوشه از خلبت خودش نشسته و هیچ گونه آیدی نداشته که هیچ بلکه سربار دیگران سربار جامعه نیست بوده و انتظار داره دیگران از او در نگهداری بکنه کمکش بکنه یاریش بکنه به همثال اینها خب این مسئله خیلی واض این دوتا انتخاب کرد انتخاب که انتخاب کرد که ادامه بده به کارهای مفید و به کارهایی که باید ادامه میداد و یکی هم انتخاب کرد که نه من در گوشهی خلوت میشینم و دیگران وظیفه داره یا دیگران از روی لطف و احسان به من کمک خواهد کرد خب قطعا نتایج این دوتا فرد کاملا متفاوت خواهد بود یا در عرصه تجارت و اقتصاد شما مده نظر بگیرید فردی مثلا از دانشگاه یا همتون فارغ میشه و میره به سمت کارافرینی میره یک, سا... یک کار در حقیقت یک دفتر یک کار یک تجارت را آغاز میکنه ولی فردی دیگه برعکس از همون دانشگاه از همون در حقیقت فارغ شده و میره یک جایی که کارمند باشه و حقوقی کارمندی دریافت بکنه و ما به کار خاص دیگه انجام نمیده نمی و قولی امروزی ریسک انجام نمیده و اهل ریسک نیست خب این دوتا در حقیقت انتخاب کرده انتخاب کرده که سرنویشتی این چی باشه و سرنویشت آن چی باشه خب قطعا سرنویشتی این دوتا مثل هم نیست اینها انتخابگرانی هستند که سرنوشتشان با توجه به انتخاب انتخابی که کرده کاملا متفاوت و کاملا متغیر خواهد بود کسی که در عرصه اقتصاد رفتن وارد صنعت شده وارد تجارت شده وارد یک بیزنس شده که باید اون کار رو انجام میداد خب قطعاً از نظر اقتصادی از نظر اجتماعی از نظر خیلی مسائل دیگه حتی یادگیری که شما مد نظر داشته باشید خیلی روشت میکنه و خیلی بالا و قسرنوش این فرد کاملا با سرنوشت فردی که انتخاب کرده است که یک کارمند ساده ای در یک گوشه ای از دفتری در, در یک گوشه ای از یک شرکتی کار بکنه متفاوت هست پس ما ما سازنده ما خالق ما خدای سرنوشت خودمون هستیم بعد از خدای متعال ما خدای سرنوشت خودمان هستیم و در این راستا هر قدمی که ما ور می داریم هر تصمیمی که ما می‌گیریم خدای متعال به آن لبیک خواهد گفت و در آن راستا ما را یاری و کمک خواهد کرد کما تو شما می‌بینید مثلا در قسمت یاری رساندن خدای متعال که مطابق با سرنوشت یا و یا همان همجوشی اینرژی اینرژی های, اینرژی های کیهانی هست خدمت شما عرص میکنم که اگر شما مد نظر داشته باشید که یک فردی در تجارت وارد شده و یک فردی دیگه هم نه نه در تجارت بلکه به راه دیگهی راه خیلی بد منفی مثلا سیگار کشیدن یا هر کاری شبیه به این این دوتا در راستای کارشان کمکهایی هایی دریافت خواهد کرد نیمت, خوا... نیمت هایی را در راهشان تجربه خواهد کرد که دقیقا همراستا با انرژی و همجوشی انرژی کائنات هست پس ما در هر بخش در هر رشته ای که فعالیت میکنیم خدای متعال در آن زمینه یاری رسان ما خواهد بود چون بخش بخشی مفید و عالی و در حد بخشی بسیار فوق‌العاده‌ای برای جامعه باشه و تکی اینکه یک بخش یا یک کار فوق‌العاده بد یا خرابی در جامعه باشه پس ما انتخابگر هستیم بر اساس انتخاب‌هایمان ما در حقیقت مزایا و معایب زندگی من را در در چیش خواهیم دید. و این بسیار بسیار بسیار خوبی داست که ما انتخابگر هستیم و ما باید از نتایج انتخابهای من برخوردار باشیم.